حکایت در بیشی را شنیدم که در آتش فاقه می سوخت و رقعه بر خرقه همی دوخت و تسکین خاطر مسکین را همی گفت به نان خشک قناعت کنیم و جامعه که بار مهنت خود به که بار مهنت خق کسی گفتش چه نشینی؟ که فلان در این شهر طبعی کریم دارد و کرمی امیم میان به خدمت آزادگان بسته و بر در دلها نشسته اگر بر صورت حال تو چنانکه که هست وقوف یابد پاس خاطر عزیزان داشتن منت دارد و قنیمت شمارد. گفت خاموش که در پسی مردن به که حاجت پیش کسی. بردن هم رقع دوختن بهو الزام کنج سبر که از بحر جامع رقع بر خاجگان نبیشت، حقا که با عقوبت دوزخ برابر است، رفتن به پای مردی همسایه در بهشت.